سلام ارز میکنم خدمت دوستان عزیزم که همه الحمدلله پزشکین و میتونین اطلاع رسانی به بقیه افراد بکنین از یک شمب شب که من کشی که اولم در کامکار بود در شروع این موضوع اولین مورد یک بیمار پنجاه ساله بدون بیماری زمینه ای نسبتا ورزشکار کنه بر با آنفلانزا اومد بستری شد در آی سیو ما عکس مریض رو که دیدم با با موارد دیگهی که آنفولانزا داشتیم مثل اچیک که خب هم چند سال پیش داشتیم و هم دو سه ماه پیش داشتیم عکس سینه متفاوت بود یعنی چستیکس رای ما توی اچیک اینکا معمولا پچی این فیلتریشن بود ولی اینجا میدیدی یک دست سفیده و یک پترن کاملا سفیده یک دست که نشون میداد ریه به شدت تخریب شده مریض کاملا حشاره ولی تو دیسترست تنفسیه و به صورت خیلی برقاس پیشرفت میکنه معمولا این وضعیتش و این مریض که از صبح توی آیی سو بستری شد دیگه تقریبا شب ساعت هشت و نه 6 -7 بود که ما دیگه مجبور شدیم این توبهش کردیم و این توبه هم خیلی نتیجه براش نداشت مریض عرست کرد تا دوده یک ساعت و نیم احیا شد ولی نتیجه ندادم خدمت تو عرض کنم چیزی که برای خود من جالبه شاید بعد حالا گزارش بشه اینه که اولا اینها اضافه بر بیماری تنفسی که میگیرن به نظر من یک در واقع میوکاردیت ویروسی هم میگیرن چون اصلا مریضی که حالا قلب سالم داره و کوهنورده یک بی اک ساعت و نیم احیام میکنیم اصلا نمیدونم تا کجا صحبت تا حالا حرف با این اون زدم متوجه نشدن ولی به هر حال ما توی آیشوی خودمون کامکار سه تا تا حالا از یک chambre تا حالا مرغومیر داشتیم یه موردش آقای 50 ساله یه مورد خانم جوون و یک موردم یه مریض سی پی بود متو سی پی نسبتا خوب بود حالا مشکلی غیر سی پی ندوش اینا فوت کردن چندتای ایزام کردیم به تهران که اینا امروز بچا خبر گرفتن همه توبه شدن و رفتن زیر دستگاه و خود این باعث انتشار به شهرهای دیگه میشه به اضاف اینکه با تعجب دوره کومون متغیر که حالا تو رفرنس ها میگن از 3 روز تا 14 روز که میگن خیلی از افرادی که الان تو خود قم هستن ممکنه ناقل باشن دارن از قم میرن بیرون از حالا وحشتی که دارن و اینا میره و قاعدتا تو دو 3 هفته آینده انتشارش تقریبا کشوری میشه این ای بی جی یک بیماری که الان گرفتم سچورشن شلوش 40 است. بین 40 تا 50 متغیر دیسترس تنفسی داره و ولی حششار خیلی تعجب می بینید که الان اقم سچورشن 40 تا 50 ای بی جی تقریبا طبیعی و به این دلیله که باز من بالا هم به متخصی و خانومونم تحکیل کردم که به نظر میاد که این رفتار تو این ویروس خیلی غیرادیه علا رقم سچورشن پایین ما دوچار استوز متابولیک نمیشیم استوز تنفسیمون خیلی واضح نیست و اینکه که مریض وقتی عرص میکنه از نظر قلبی خیلی عقب هستیم از داستان و نمیتونیم در واقع احیا خوب موفق باشیم یک نکه یاد اطلاعی با صورت همکار عزیزم بگم که اینکه من میگم اینا احتمالا میوکاردی تا ویروس میگنند یک تعییدیش میگه این ای بی جی بیمارانمون اکثرا مشکلی نداره یعنی باید ما احساس میکنیم با این اکثری سفید ما یک اسیدوز تنفسی حاد اون چنانی داشته باشیم اینجور نیست خیلی ای وی جی فرناویات مثلا پی اچ 72 725 هفت این مورداست پی سی او 2 هاشون معمولا حتی ما یه موردش هست اینا که مبل فورتش داشتیم حتی آلکالوز متابولیک به انچید کاملا غیر عادی ما حتی مثلا بگیم حالا منجر و اسیدوز میشه اسیدوز متابولیک اسیدوز تنفسی نه همچی چیزی نبود مریضمون آلکالوز متابولیک داشت که البته من شک کردم به ای وی جی دیدم همچی موردی هست به نظر میاد درگیری قلبیش یه مقداری شدیده و این عامل این مشکل میشه سلام رزا جون خدمت درس کنم که هیچ هیستوری از تماس با فرد ندارن اینها بیشتر به نظر میاد از سطوی آلوده گرفتن چون یکیشون که خیلی آلرت بود برداشم متخصص بود متخصص رادیولوژی بود پرسیم گفت نه ما هیچ کسی تو فامیلی اطرافی نبوده که باش در تماس باشه به نظر میاد بیشتر از توتوه میگیرن هیستوریشون هم با طب و لرز و تنگ نفس شروع میشه اکثراً با طب و لرز و تنگ نفس اینایی که من دیدم اوتو آیسو بستری کردم هم همینطوره سلام احمد جون متخصه اوفونی که الان مستقل تو کامکار هستن میگن چون آشنایی زیادی با این ویروس هنوز نداریم نمیتونیم بگیم که چه تطوراتی از خودش بروز میده ولی به نظر میاد اگر تب داشته باشه منتقل میکنه ارز کنم خدمتتون که اتفاقا دو تا صد از متخصه بوشی که الان تو اورژانس کام کار مستقرند به من ما هم در تماسیم چون محه مریض بعد حال که برم ویزیت کنم برای انتقال با آیSU هستند که آیSU سی اون همه پر شده دیگه رفییت پذیرش مریض بعد نداریم دو تا از متخصص بیوفونی آفونی که داشتن با هم صحبت میکردن در جریان قرار گرفتم میگن که خب حالا ما این مریض‌ها رو بستری کردیم تخیصشون که یعنی که با چه علامت خیالمون راحت چه بفرستیم و بگیم اینا بهبودی داشتن فعلا هیچی نمیدونن چون هنوز ویروس براشون ناآشناست و فعلا فقط داره بیمارستون کامکار پر میشه فکر می‌کنم تا فردا ظهر کله در واقع تختامون پر بشه فعلا بخش بیژمون پر شده اورژانس که پوره تمام بخش تخلیه شده از مریضای معمولی همه بخش اون رو کردیم عفونی و اینجوری که مع سوپواایزر تا یه رو پیش پرسیدم گفت تقریبا تا فردا ظهر با همین روال پر بیمارستان. بیمارستان بعدی احتمااً فرغانی یا بیمارستان شهید بشتی چون به شهید بشتی هم اختار دادن که تختاتونو خالی کنیم. مریضای الکتتیو و کنسل کنید عملا رو تخت خالی بشه، و آماده بشه برای پذیرش مریض آنفلانز چی هایی که حالا به همه پزشکی اون می انجام میشه رو خب به همه اطرافیانتون بگید قایدتا بیماری بیشتر از اون حرف که تصور می کنیم کشنده است و خیلی هم سیر نس... سریع داره نسبتا مریض تا 4-5 ساعت قبل از اینکه عرص بکنن و سی پی آر بشن حششانن با همراهی هاشون را از صحبت میکنن و برای همراهی ها غیروابل باوره که به این راحتی میمیرن سلام عباسشون این پروتوکولی که نوشتی و ما الان همه اوصلتاش هم که قبلا داشتیم نداریم الان تو بیمانستان کامکار که مرکز بیمانستان افونیمونه و داروه دیگر هم کرگفبها اون هم موجود نداریم. من درمان که دیدم متخصی افونی میذارم فقط درمان های حمایتی کار خاصی براشون نمیکنن حتی مثلا الان که آنتی بیوتیک و کورتون و اینام که بسیار مخالفش هستند فقط ما داریم درمان هایتی میکنیم دیگه واقعا اگر سیستم ایمنی خود فرد جواب بده بتونه خوب بشه و مریضای دیگرش هم که بدحال میشن اصلا هیچ راهی نداریم هیچ کاری برای درمانشون نمیتونیم بکنی طبقا آماری که من دارم تا حالا 8 تا فوتی که من دیدم نمیدونم حالا برقه جا چجور بوده تو بیمارستان های دیگه هم داشتن تا قبل از اینکه انوز حالا کیتش باشه و آزمایش بکنن مثلا تو بیمارستان مبرزه داشتن تو بیمارستان سپاه داشتن تو بیمارستان ولیست داشتن اونجاها هم مرتلیته داشتیم توصیه که خودم دارم به همه دوستان اینه که شست و شوی مکرر دست ها که خیلی تاثیر داره چون که شما بیشتر تصور توی اینه که با یک فردی مواجه میشید که آن فلانزا داره و از اون میگیرید ولی اینجور نیست بیشتر الان چیزی که داره رخ میده، ما تماس هاست یعنی رو به محیط آلوده میزنیم به جای آلوده میزنیم همجور که میدونیده چیز رو ده تا 24 ساعت این تو محیط میتونه آلودگیش پا بر باشه حالا توی دست کمتر مثلا تا 405 ساعت ولی تو محیط میتونه حتی تا دو روز زنده باشه بسی کسی که دستی به جای میزنه به نمیدونم میله مترو دستگیره در جای میزنه میتونه ناقل باشه و چون خودش هم در دوره کمون هست مشخص نمی و این به سرعت گسترش پیدا با اون درصد مورتالتیتی که میگن 2 درصد ولی من مرگ میری که دارم میبینم بیشتر از این حرف‌ها هست واقعا جای نگرانیه یعنی یک بحران